فصل شانزده هم. ایسا همچنین به شاگردان فرمود شخصی ثروتمند مباشری داشت و شکایاتی به او رسید که آن مباشر دارایش را حیف و میل می کند. پس به دنبال او فرستاد و گفت این چه حرف است که درباره تو می شنوم؟ حساب را واریز کن چون دیگر نمی توانی در اینجا مباشر باشید. آن مباشر پیش خود گفت حالا که ارباب من میخواهد کار مباشری را از من بگیرد چه باید بکنم؟ من که نه قوه بیل زدن دارم و نه روی گدایی کردم. آری میدانم چه کنم تا مطمئن شوم که وقتی مرا از این کار برکنار کرد اشخاصی باشند که در خانه های خود را بر روی من باز کنند. پس به ارباب را یک به یک حاضر کرد. به اولی گفت چقدر به ارباب من به جواب داد؟ صد پیمانه روغن زیتون گفت بیا این صورت حساب تو است بنشین و به جایان آن بنویس پنجاه پیمانه زود باش بعد به دیگری گفت تو چقدر به کاری گفت صد خروار گندم به او گفت صورت حسابت را بگیر و به جایان بنویز آن بنویس هشتاد خروار آن ارباب مباشر نادرست را به خاطر اینکه چنان زیرکانه عمل کرده بود تحسین کرد زیرا مردم این دنیا در مناسبات با هم خود از ایمانداران زیره پس به شما می که مال دنیا را برای به آوردان دوستان مصرف کنید. تا وقتی پولتان به آخر رسید شما را در خانه جاودانی بپذیرند. کسی که در امور کوچک درست کار باشد در کارهای بزرگ هم درست کار خواهد بود.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 چون یا از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت دارد و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند پول. فریسیان این سخنان را شنیدند و او را مسخره می کردند زیرا پول دوست بودند. عیسی به آنان فرمود شما کسانی هستید که نیکویی های خود را به رخ مردم می کشید. اما خدا از درونتان آگاه است چون آنچه در نظر آدمیان ارزش بسیار دارد پیش خدا پلید است تا زمان یحیا تورات و نمشته های انبیا در کار بود از آن پس مجده پادشاهی خدا اعلام شده است و همه مردم میخواهند با جد و جهد به آن وارد شوند آسانتر است که آسمان و زمین از بین برود تا نخطه از تورات بیفتد. هر مردی که زن خود را طلاق بدهد و زن دیگری بگیرد مرتکب زنا می شود و هر کسی زن طلاق شده را بگیرد زنا می کند. مرد ثروتمندی بود که همیشه لباسی ارغوانی و از کتان لطیف میپوشید و با خوشگذرانی فراوان زندگی میکرد. در جلوی در خانه او، گدای زخمالودی به نام ایلازر خوابیده بود که آرزو داشت با ریزه‌های سفره آن ثروتمند شکم خود را پر کند. حتی سگ‌ها نمی‌آمدند و زخم‌های او را میلیسیدند. یک روز آن فقیر مرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند. آن ثروتمند هم مرد و به خاک سپرده شد. او که در دنیای مردگان در عذاب بود، نگاهی به بالا کرد. و از دور ابراهیم را با ایلازر که در کنار او بود دید، فریاد زد، ای پدر من ابراهیم، به من رحم کن، ایلازر را بفرست تا سر انگشتش را به آب بزند و زبان مرا خنک کند چون من در این آتش عذاب می کشم. اما ابراهیم گفت فرزندم، به خاطر بیاور که وقتی زنده بودی، همه چیزهای خوب نصیب تو و همه بدیها نصیب ایلازر شد حالا او در اینجا آسوده است و تو در عذاب هستی اما کار به اینجا تمام نمی شود شکاف امیغی میان ما و شما قرار دارد هر که از این طرف بخواهد به شما برسد نمی تواند از آن بگذرد و کسی هم نمی تواند از آن طرف پیش ما بیاید او جواب داد پس ای پدر التماس میکنم کنم را به خانه پدر من که در آن پنج برادر دارم بفرست تا آنان را باخبر کند، مبادا آنان هم به این محل عذاب بیاین. اما ابراهیم گفت، آنها موسا و انبیا را دارند به سخنان ایشان گوش بدهند. آممر جواب داد، نه، ای پدر، اگر کسی از مردگان پیش ایشان برود، تو بخواهند کرد. ابراهیم در پاسخ فرمود اگر به سخنان موسی و انبیا گوش ندهند حتی اگر کسی هم پس از مرگ زنده شود باز باور نخواهند کرد